فصل پانزه هم. من تا حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه ای را که در من سمر نیاورد می و هر شاخه ای که سمر بیاورد آن را پاک می تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخهی نمی تواند به خوری خود می دهد. مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمی توانید بیاورید، مگر آنکه در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او میوه بسیار می آورد. چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. اگر کسی در من نماند، مانند شاخهی به دور افکنده می شود، و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می و در آتش میریزن و میسوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند هرچه میخواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشته هم. در محبت من بمانید، اگر مطابق احکام من عمل کنید، در محبت من خواهید مان، همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودم، و در محبت او ساکن هستم. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم. محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمیخوانم، زیرا بنده نمیداند، اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خاندم. زیرا هرچه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم، شما مرا بر نگوزیده اید، بلکه من شما را برگزیده ام و معمور کردم که بروید و میوه بیاورید، میوهی که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید، حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید. اگر جهان از شما نفرت دارد بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است اگر شما متعلق به این جهان بودید جهان متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده هم، به این سبب جهان از شما نفرت دارد آنچه را گفتم به خاطر بسپارید غلام از ارباب خود بزرگتر نیست اگر به من آزار رسانیدند به شما نیز آزار خواهند رسانید و اگر از تعالیم من پیروی کردند، از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود چون شما به من تعلق دارید آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت زیرا فرستنده مرا نمیشناسند اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمیگفتم آنها تقصیری نمیداشتند ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند کسی که از من متنفر باشد از پدر من نیز نفرت دارد اگر در میان آنان کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آنها نیست انجام نداده بودم، مقصر نمی بودند. ولی آنها آن کارها را دیده ولی با وجود این هم از من و هم از پدر من نفرت دارند. و به این ترتیب تورات آنها که می گوید بی جهت از من متنفرند تحقق می آبد. اما وقتی پشتیبان شما، که او را از جانب پدر نزد شما میفرستم بیاید یعنی روح راستی که از پدر صادر میگردد او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود زیرا از ابتدا با من بودید